کتاب افسانه های غول ها. نویسنده محمد شمس ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افثان داستانهای افثانهی سوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی. گوینده هانیه جک و لوبیای سهرامیست در زمانهای قدیم بیوهزن دهقانی زندگی میکرد خیلی فقیر بود او تنها کسی که تو این دنیا داشت پسری بود به نام جک و گاوی که اسمش دیزیبل بود جک کارهای کوچیکی واسه راحتی و خوشحالی مادرش انجام میداد ولی او کارها را سرسری می میگرفت و تو هیچ کاری جدی نبود جک همیشه امید داشت و به مادرش می میگفت مادر نگران نباش همه چیز درست میشه حالا می بینی؟ و با این حرف ها مادرشو بیشتر از خودش ناراضی میکرد. یه روز صبح بعد از اینکه جک بابی خیالی وارد خونه شد مادرش با گریه و ناراحتی و در حالی که دستاشو از خشم به هم فشار میداد گفت جک تو کی میخوایی دست از تنبلی برداری؟ تو باید اینو بدونی که هیچ کاری خود به خود درست نمیشه. جک با امیدواری همیشگیش گفت ناراحت نباش مادر. ما هنوز دیزیبل رو داریم. میتونیم اونو به قیمت خوبی تو بازار بفروشیم. مادرش گفت ما حتی اگه ده تا دا گاوه داشتیم بازم فایده ای نداشت چون به زودی پولش تموم میشد. بعد فکر کرد و ادامه داد تو راست میگی ما باید دیزیبل رو بفروشیم. چاره دیگه هم نداریم. جگ که خیلی دیزیبل رو دوست داشت و فکر نمیکرد مادرش این حرفی بزنه و. چنین تصمیمی بگیره از حرفی که زده بود پشیمون شد و گفت ولی مادر اما مادرش صحبت رو قطع کرد و گفت امروز همین امروز دیزیبل رو به بازار میبری و میفروشی و این آخرین حرف منه جک دیگه چیزی نگفت دیزیبل رو برداشت و سمت بازار رفت هنوز از خونه زیاد دور نشده بود که به مرد عجیبی رسید مرد کوتاه و خمیده ای که آهسته راه میرفت چشمهاش شفاف و مثل سوزن تیز بود کوتوله گفت صبح بخیر جک جک گفت صبح شما هم بخیر و با تعجب از خودش پرسید ای مرد از کجا اسم منو میدونه مرد پرسید صبح این زودی کجا میری جک بابی میلی گفت راستش رو بخوای من بازار میرم تا گاومو بفروشم. بعد تنابی دیزی رو محکمتر نگه داشت و گفت ممکنه بپرسم چرا سآل میکنی؟ مرد غریبه در حالی که چشمش برق میزد گفت باست که من مایلم گاوتو بخرم و تو رو از رفتن به بازار راحت کنم. جگ با شک و تردید پرسید به نظر نمیاد کشاورزی باشی؟ که به گاوی مثل دیزیبل احتیاج داشته باشی؟ غریبه با تعمل گفت من به گاو احتیاج دارم و همین الانم پولشو میدم جک بابی سبری پرسید؟ خوب قطوله ادامه داد من پنج تا دونه لوبیا به تو میدم اون وقت از تو جیبش پنج دونه لوبیا بیرون آورد که خیلی عجیب به نظر میرسیدند جک خیلی سختون دونه حرفی رو کش بود و باور کنه اون با عصبانیت خندید و سرش رو تکون داد سرانجام فریادی کشید و گفت بهتر اینقدر در حق من مهربونی نکنی. شما فکر کردی من احمقم دیزیبلو در مقابل این لوبیاهای عجیب و غریب بدم هرگز مرد کتوله سعی کرد جک رو آروم کنه بهش گفت آه تو متوجه نیستی من نمیدم که تو پسر نادانی هستی. جک اینا لوبیاهای معمولی نیستن. سهرامی زن. آیا تو پیشنهاد پنج لوبیای های سهرای صورت میکنی؟ در حالی که ارزش اینا صد برابر گاو شماست. حرف منو گوش کن. جک با صدایی آرام و نامطمئن به گفت؟ من حرف تو باور نمی کنم. شما میگی اینا سهرامی زن؟ تکرار کرد؟ بله، سهرامیزه. اگه اینا رو امشب تو باخشتون بکارین، خودتون متوجه میشین. جک گفت اگه اینا جادوی نبودن چی؟ گاومو به من پس میدی؟ مرد غریب و فوری گفت حتماً به تو قول میدم. جک کمی دو دل بود. اما فکر داشتن پنج لوبیای های او رو راحت نمیگذاشت. او با خودش گفت شاید با عرضش تر از پول باشن ناگهان جک با صدای بلند خندید و گفت باشه اینا رو برمی‌دارم بیا دیزیبل رو بگیر و لوبیاها رو بده بعد تناب گاف رو به کتوله داد و کتول هم با دیزیبل راه خود خودو در پیش گرفت و بدون اینکه به پشت سرش نگاه کنه رفت قبل از اینکه جک خودش رو به خونه برسونه غروب شده بود او کمی نگران بود نمیدونست جواب مادرش رو چطوری بده. پس میزد که مادرش از این کارو ناراحت بشه. بالاخره با خودش گفت که نباید نگران باشه. بعد سود زنان وارد خانه شد. مادرش گفت زودتر از چه فکر میکردم پرگشتی؟ خب ایوی نداره. حالا به من بگو چقدر بابت دیزی بل گرفتی؟ جک منمن کنان گفت من... من گاو دادم و به جاش اینا رو گرفتم و پنج لوبیای سهرامیزو روی میز ریخت. این لوبیاها ها جادوی جادویی. جادوی. مادر دسته جادو رو برداشت و وانمود کرد که میخواد اونو بزنه. ولی جک از جاش تکون نخورد. بعد مادرش خودش رو روی صندلی انداخت و صورتش رو میان دستاش پنهون کرد و از شدت ناراحتی شروع به گریه کرد. طولی نکشید که دوباره ایستاد سیلی به جک زد و داد زد احمق نادان تو میدونی چه کار کردی؟ حالا ما باید باز هم گرسنگی بکشیم اونم فقط به خاطر لوبیاهای های سهرامیز تو بعد لوبیاها ها رو از روی میز جمع و از پنجره به بیرون پرد کرد جک با لحن امیدواری گفت مادر نگران نباش اما مادرش با این حرف بیشتر عصبانی شد و رو به بیرون آشپزخونه هل داد و فریاد زد همین الان برو به خوابتو هرچی دلت میخواد برای غذا جیغ داد کن چون چیزی برای خوردن نداریم جک خسته و گرسنه به رخت خواب رفت ولی خوابش نبرد او هنوز باور داشت که لوبیاها سهرامیز هستند و از اینکه اونا رو از دست داده بود خیلی ناراحت بود کتوله به او گفت که اونا رو بکاره اما مادرش هیچ فرصتی به او نداده و لوبیاها رو به بیرون پرت کرده بود. و حالا اونا در میان علف های حرز بودند و خاصیت جادویی خودشو از دست میدادن ولی جک اشتباه میکرد. موقعی که او توی رخت خوابش به لوبیاها فکر میکرد، لوبیاهای سهرامیز تو خاک ریشه کرده بودن و همینطور رشد میکردند. صبح وقتی جک از خواب بیدار شد، لوبیاها به آسمون رسیده بودند. جک در حالی که با تعجب به لوبیا آخر شده بود فریاد زد لوبیا های من ریشه دادن و بزرگ شدن پس کوتوله درست میگفت اونا سهرآمیز هستند. لوبیا آنقش نزدیک به پنجره اتاق جک رشد کرده بود که آسانترین کار دنیا برای او پریدن روی های شبیه نردوان لوبیا و بالا رفتن از آن بود و این درست همون کاری بود که او انجام داد جک بالا رفت بالا و بالا تا اینکه سرانجام به آسمان رسید جادهی مستقیم و طویلی اونجا بود که به نظر می رسید به جک می روش قدم بگذار و جلو برو و جک این کارو کرد قلب او از شدت حیجان به تندی می زد جاده واقعا طولانی بود ولی جک احساس خستگی نمی کرد. فقط شدیدن گرسنه بود چون اون نه خورده بود و نه صبحانه او همینطور جلو می رفت. ولی نمی دونست چقدر را اومده و چقدر دیگه باید بره. تا اینکه سرانجام به یه خانه خیلی بزرگ و بلنده تیر رنگ و قل مانندی رسید که زنی روی پله هاش نشسته بود که هیکلش چند برابر او بود. جک معدبانی گفت صبح بخیر خانم خواهش می کنم اگه ممکنه چیزی واسه خوردن به من بدین. من از گرسنگی ضعف کردم. زن گفت بهتر زودتر از اینجا بری. شوهر من یه غول درنده است. من اونو خوب میشناسم. اگه تو رو ببینه حتماً به جای صبحانه تو رو میخوره. جک گفت خانم اجازه بدین قبل از اینکه اون بیاد من باشپسخونه برام و لقمه غذا بخورم. قول میرم خیلی زود بیرون بیام. من خیلی گرسنم. زن با شک و دودلی سرش رو خاروند. او از جک خوشش اومده بود. جک خیلی معدب بود. تازه خودش هم از تنهایی در می اومد. ولی با این حال از شوهرش خیلی ترسید. کمی فکر کرد و گفت خیلی خوب ولی بهتر عجله کنیم. جک همراه او به آشپسخانه بزرگی رفت و گوشه نشست و مشغول خوردن تکی نان و پنیر رو یک کاس شیر شد. اما درست موقعی که شروع به خوردن دومین تکه کرد تموم خونه شروع به لرزیدن کرد بام بام بام صدای این قدم های سنگین مانند رحد بود جک از صندلی بالا پرید و زن نفس نفس زنان گفت این صدای پای شوهرمه اون داره میاد و همون لحظه در اجاق و باز کرد و جکو به داخلش هل داد چیزی نگذشته بود که قول داخل خونه شد و با صدای بلندی فریاد زد و غذا خواست همسرش فوری گسالهی رو که شب قبل براش کباب کرده بود آورد ولی هنوز غذا رو روی میز نگذاشته بود که قول بو کشید و غرید فی فی فو فوم بوی آدمی زاد میاد اون کجاست زنده است یا مرده؟ من استخونهاشو خورد میکنم و از اونا نون درست میکنم. همسرش با نرمی گفت عزیزم تو اشتباه می کنی. هیچ آدمی اینجا نیست. باور نی کنی. بلند شو همه جا رو بگرد. خول هیکل بزرگ شروع سندلی مخصوصش که اندازه ده مرد درشت اندام توش جامی شد انداخت و با حرس و وله شروع به خوردن کرد. وقتی غذاشو تموم کرد بشقاب رو به کناری هل داد و با بیصبری از زن خواست کیسه تلاش رو بیاره و به او بده تا رو بشماره کاری که هر روز انجام میداد همسرش سکه ها رو براش آورد. اون میدونست طولی نمیکشه که شوهرش که غذای زیادی خورده بود و داشت ها رو میشمرد خسته میشه و به خواب میره غول به سرعت خوابش برد و زن با نوک پا به سمت اجاق رفت و آهسته به جگ گفت، اون الان خوابه، زودتر از اینجا برو و دیگه بر نگرد. جگ از اجاق بیرون پرید و به سمت در رفت، اما همین که از جلوی غول گذشت، یکی از کیسه های طلا رو به آرومی و به سرعت برداشت و پا به فرار گذاشت. دوید و دوید تا به ساقی لوبیا رسید، بعد کیسه طلا ها رو پایین انداخت و با شیطنت فریاد زد، مادر نگاه کن، می دونست که کیسه طلا تو باغشون میفته. بعد با سرعت پایین رفت، پایین و پایین. جد در حالی که طلاها رو روی میز میگذاشت گفت: "دیدی مادر، لوبیاها جادویی بودن. مادرش حرفشو تایید کرد و گفت: "حالا با این طلاها میتونیم تا مدتی راحت زندگی کنیم." من در باره یه لوبیه ها لوبیاها می کردم. ولی تو هم باید بدونی که اون غول خیلی خطرناکه و دیگه نباید اونجا بریم. روزهای اول جک از اینکه تو خونه است خوشحال بود. اما وقتی طلاها تمام شدن، او بیشتر و بیشتر درباره غول و گنج های دیگه ای که تو قلعهش قائم کرده بود فکر کرد. اوایل تابستون، توی روز خوب، جک صبح زود از خواب بیدار شد. خیلی آهسته از پلا پایین اومد و به باغ رفت. او تصمیم گرفته بود بدون اینکه به مادرش حرفی بزنه دوباره از ساقی لوبیا بالا بره. پس شروع به بالا رفتن کرد. بالا و بالا تا اینکه به نزدیکی همون قلعه بزرگ رسید. باز هم همسر غول روی پله نشسته بود. جک با جسارت و زیرکی گفت صبح بخیر خانم خواهش میکنم اگه میتونید چیزی برای خوردن به من بدین. چون من خیلی گرستم. وقتی زن اونو دید فریاد زد زودتر از اینجا و برو اگه شوهرم برسه تو رو به جای صبحانهش میخوره جک زیرکانه گفت آه اون که الان اینجا نیست پس اونقدر وقت هست که من چیزی بخورم بعد معدبانه ادامه داد خواهش میکنم چیزی به من بدین. زن غول همیشه آرزو داشت با کسی صحبت کنه به علاوه دلش میخواست از جک در مورد گمشدن کیسه‌های طلا سوالاتی بکنه زن کمی بعد سرش تکون داد و گفت پس عجله کن زود باش اما قبل از اینکه جک بشینه و غذا بخوره ناگهان تمام خونه رو به لرزیدن کرد و به شدت تکون خورد بام بام بام جک با عجله داخل اجاق پرید و خودشو پنهون کرد دوباره همه چیز مثل قبل اتفاق افتاد گول بو کشید و غرید. بیفیف فو فوم درست همون کاری رو که دفعه قبل کرده بود. اما همسرش فوری گوشت کباب شده رو آماده کرد و جلوش گذاشت و او همه چیز رو فراموش کرد و شروع به خوردن کرد. وقتی غذاش خورد به زنش گفت: مرغ و منو بیار تا برام تخم طلا بذاره. زن با عجله رفت و مرغ و آورد و جلوش گذاشت. مرغ قت قت قدا پرد و یک تخم طلایی گذاشت. خول از خوشحالی سرش رو تکون داد و چشمک زد. بعد خمیازی کشید و خیلی زود خوابید. جک مثل دفعه قبل از اجاق بیرون پرید و در حالی که به طرف در میرفت مرغ طلا رو برداشت و فرار کرد. مرغ با صدای بلند قدقد کرد و خول بیدار شد. اما قبل از اینکه غول حواسش رو جمع کنه و به خودش بیاد، جک نسب راه اون جاده بزرگ بود بعد از مدتی جک به ساقی لوبیا رسید و از اون پایین رفت وقتی که با خیال راحت تو آشپسخونه نشسته بود مادرش صدا زد و مرغ و بهش نشون داد اون وقت به مرغ گفت مرغ طلا یه تخم بذار تخم تلا مرغ قد قد قدار قد قد قد قد و یه تخم تلایی گذاشت مادرش گفت من امیدوارم اینطور خوشحال کنه و تو خونه بمونی و دیگون بالا نریم. اما جک نمیتونست غول و گنج اونو فراموش کنه. یه روز همونطور که به ساقیه لوبیا خیره شده بود با خودش گفت فقط یه بار دیگه. من باید یه بار دیگه از ساقیه لوبیا بالا برم. او وقت از ساقیه لوبیا بالا رفت. وقتی جک با سومین بار به نزدیکی خلیه رسید زن قور رو دید که روی پله ها نشسته بود ولی جک باهوش بود و خودشو به اون نشون نداد جک فکر کرد او مطمئنا منو به خونش راه نمیده پس منتظر شد تا اینکه زن غول به داخل حیاط رفت و درو باز گذاشت جک وقت رو تلف نکرد و با عجله داخل آشپزخونه شد اما این بار او فرصتی برای رفتن به طرف اجاق نداشت و مجبور شد خودشو توی دیگ مسی که خیلی میدرخشید و زن لباسهای کثیف رو تو اون میجوشون پنهان کنه توی نکشید که او صدای بام بام بام قدمهای سنگین غول رو, شند با غول رو شنید و احساس کرد خونه میلرزه و تکون میخوره بعد قرش غول رو شنید و ف فو فوم بوی آدمیزاد میاد او زنده است یا مرده؟ من آسخونه خرد خورد میکنم و ازشون نون درست میکنم. بعد از اون جک صدای همسر غور رو شنید که میگفت شوهر عزیزم این چه حرفیه که میزنی؟ من میتونم به تو اطمینان بدم که هیچ غریبه ای تو آشپزخونه نیست. این باید بوی اون پسر بچهی باشه که دیشب موقع شام خوردی و هنوز از بینید بیرون نرفته. بیا. غذا بخور و بعد هم بگیر بخواب. اما قبل از اینکه غول بخوابه به زنش گفت چنگ تلای منو بیار. زن رفت و چنگ را اوورد و جلوش گذاشت. غول به چنگ گفت ای چنگ خوش آهنگ به نواز و چنگ زیباترین آهنگار نواخت تا اینکه غول به خواب رفت. وقتی جک خورناس های بلند غول رو شنید در دیگه مسیر رو برداشت و بیرون اومد، به آرامی یک موش به سوی میز رفت، بعد چنگ را برداشت و به طرف در دوید، اما چنگ یه دفعه به صدا در آمد و فریاد زد، بیدار شو ارباب، بیدار شو، ناگاهان خول از خواب پرید و جنگ را دید که از در بیرون رفت، خول نره از خشم کشید و با سرعت به دنبالش دوید، چنگ با عجله می و موازم بود که راه رو اشتباه نره، در حالی که غول با عصبانیت میدوید و گاهی به مانع برخورد می‌کرد و میافتاد. وقتی جک به ساقی لوبیا رسید، خودش رو مثل یک میمون از یک شاخه به شاخه دیگه تاب داد و پایین اومد. همونطور که به زمین نزدیک می‌شد فریاد زد: مادر، مادر، فوری تبر رو برای من بیاور. زود باش، غول داره نزدیک میشه. جک از ترس می‌لرزید. مادرش با عجله تبر را اوورد و جک با تمام قدرتش با تبر به ساقی لوبیا زد. ساقی لوبیا به این طرف و آن طرف می رف. جک چند بار دیگه به اون ضربه زد. بالاخره ساقیی لوبیا شکست و پایین افتاد و همراه او خول بزرگ هم سقوط کرد. جک بارا می گفت قول کشته شد. ولی حیف که لوبیا های میزم از بین رفت. سپس؟ چنگ رو به مادرش نشان داد و به چنگ فرمان داد تا بنوازد. از آن روز به بعد جک و مادرش سالیان دراز به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کردند. جک بزرگ و ثروتمند شد و با شاهزاده خانومی زیبا ازدواج کرد. اما او پند مادرش رو گوش کرد و به همسرش چیزی راجب لوبیای سهرامیز که باعث شد او چنین ای داشته باشد، نگفت. کانال تلگرامی هزار افسان، داستان های افسان ای صوتی نشانی کانال تلگرامی t.me نقط/مهران دوستی، T ME/MEHRAN نشانی وبلاگ ما com